خب بسم الله الرحمن الرحیم خاندیم که اعراب بر چار ما بود رفع نسب جر و جزم موقعی که ما میگیم این کلمه مرفوع هست معنیش چیه؟ یا میگیم منصوب هست؟ معنات چی هست؟ یا میگیم مجزوم هست؟ ببینید کلمات نخش دارند اعراب دارن بحث اعراب هستیم میگن، یا رفع یا نصب، یا جر یا جزم ولی موقعی بگیم مرفوح هست یعنی چی؟ منصوب هست یعنی چی؟ چه فرقی درش میگن؟ بله هر یکی از رفع او، نسب و جر و جزم علامت هایی دارند. موقعی گفتیم این کلمه مرفوح هست یعنی اون علامت رفع بشودیم ببینید؟ مثلا؟ ما میگیم قام زیدون اینجا میگیم زید فائله و فائل جز مرفوعاته یعنی چی؟ یعنی رف علامت دارد زمه واب علف نون باید یکی از این چهار علامت رو بشویدیم قام زیدون اگر یکی اومد گفت قام زیدن اشتباه گفته چرا؟ چون میگیم زید اینجا فائله بعدن البته اینا رو میخوریم من فعلا میخوام یک دوراندازی یا چشماندازی تو ذهن بیاورم قام زیدون میگیم زید اگر کسی گفت قام زیدن اشتباه هست چرا چون میگیم زید فائله و فائل مرفوعه و در کتاب نهوی موقعی که میریم میبینیم که فتحه جز علامت رف نیست علامت رف زمه و واب و علیف و نون هستند زمه و واب و و و اینجا هم فائل و مرفوع لذا فتحه نمی پذیره بعدش دوباره یک تقسیم بندی ریزتری میآورد که حالا که رفتار علامت داره زمه و و و, و علیف و نیون می خودش دوباره تقسیم بندی های ریزتر میگه که زمه مخصوص چه کلمه ای هست و مخصوص چه کلماتی هست علف مخصوصه چه کلمهاتی هست و نون مخصوصه چه کلمهاتی هست لذا میگیوید لرفعی اربعو علامات الان علامت های اعراب رو به ما میاموزد گفت که اعراب بر چار نوعات رفع، نصب، جر، جزد حالا هر یکی از علامت های رفع علامت های نصب، علامت های جر و جزد رو در درس های آتی به ما خواهد آموخت ابتدا مال رفع رو میگوید رفع چهار علامت دارد یعنی کلمه ای مرفوشد بعدن میخویم کلمات چه زمان مرفو اند چه زمان منصوب اند چه زمان مجرور و چه زمان مجرور حالا میخواهد بگوید اگر کلمه ای مرفوشد چه علامت های رفع دارد لرفع اربعه علامات رف چار علامت دارد الضمه یک زمه و الواو واو دو و الالف سه و نون شدن 4 تا شدن چند تا خب ما موقع کلمه مرفوع شد از کجا بدونیم که آی بهش زمه بدیم یا واب بدیم یا الف یا نون دیگه از اینجا به بعد میگه که زمه مال چی کلمات است واب مال چی کلمات هست و بقیه فَأَمَّذْ بَمَّتُو فَتَكُونُ عَلَامَةً لِلْرَفْئِ فِي أَرْبَعَةِ مَوَاضِ می که زمه علامت رخ است در چار جا زمه چار جا در چار کلمه علامت چه هست؟ هست. یک الاسم المفرد اسم مفرد مانند جاء زیدون چون زید مفرده و جمع جمع مکسر مانند جاء جاء رجالون چون جمع مکسر مرفوع زمه گرفت و جمع المعنس سالم و جمع المعنس سالم مانند جاءت مسلماتون والفعل الفعل الذي لم يتصل به آخرهی وفعل و فعل که به آخرش چیزی وصل نباشد به آخرش زمیری وصل نباشد مانند یزربو تزربو ازربو نزربو با آخرشون چیزی نچست کده لذا در حالت مرفوع زمه میگرند پس زمه علامت رفت چار کلمه است. اسم مفرد جمع مقصر جمع موننس سالم و فیل مزاریک به آخرش زمیر به آخرش چیزی نچسبیده باشد این شد از زمه اما واق ببینید در کتاب ها به شکل های مختلفی میارن بعضی از کتاب ها میانند که علامت اصلی زم زم رفعون زمه هست ولی یک سری علامت های دیگه ای جانشین زمه میشن، جانشین چی میشن؟ زمه میشن یعنی اون کلمات با زمه مرکول نمیشند بلکه با جانشینش که بهش میگن بعضی از کتاب ها اعراب اصلی و فرعی بعضی از کتاب ها میگن اعراب اصلی مثلا جا مسلمون مسلمون اینجا مرفوه ولی با واف مرفوه است یعنی هرگاه جمع مذکر مرفوه بیشه واف میگیره جا مسلمون منصوب بیشه یا میگیره رأیتو مسلمین خب میگن جمع مذکر اعراب فرعی داره یعنی زمه رو اعراب اصلی حساب میکنن واف و و نون رو اعراب فرعی به هر شکلی بحثات مهم این است که اینا حالشون توضیحات فرق دارن در لفظ هست در چه هست؟ سمره همون یکیست خب پس زمه رو توضیح دادیم که چه کلماتی هرگاه مرفو شدن زمه میگیرن و اما الواق یعنی وق جانشین زمه میشه در کلمات زیر و اما الواق فتکونو علامت للرفعی فی موضعین وق علامت رفعی هست در دو جا در دو کلمه فی جمع المذکر سالم یک در جمع مذکر سالم یک در کجا؟ در جمع مذکر سالم مانند جا المسلمون میگیم المسلمون فائل مرفوع علامت رفت چه هست؟ واف علامت رفت چه است؟ علامت رفت هست اون نون مقابله هست، نونی هست که اما تو که در زیدون تنوین میاد در جمع مذکر سالم و مسننه هم این نون میاد خاطر این است موقعی که مضاف میشه، این نون چی میشه؟ حس میشه جا مسلمو عراق، مسلمانان عراق و بدن خب اینجا نون چی شد؟ علامت عراق هم این واب هست، این چی هست؟ هست پس در دو جا یک در جم مزکر سالم و فی الاسماء الخمسه و در اسمهای خمسه ما پنج کلمه داریم و بعضی کتاب میان اسم اسماء سته لازم میارن خمسه بعضی یارن سته که اینا مشهورن هرگاه مرفوشی می دان میگیرند. علامت رفت در این پنج کلمه چه از واف و هی ابوکا و اخوکا و حموکا و فوکا و ذمّال چرا این رو بازمی آورده. چون یکی از شرطاشون این هست که باید مزاخ باشند یکی از شرطاشون این چه یکی این که مکبره باشند یعنی تسخیر نشده باشند و شرط دیگر این هست که مضاف باشند خب اینا هم هرگاه مرفو باشند و آب میگن. مانند جا ابوک ابوک آلمون پس اینا ولی تا شرط دارد شرط اول روشون اینه که مفرد باشند آبا اعرابش فرق میکنه با ابو یکی این کیسی باشند مفرد دیگر این که مکبره باشند سومین این که مضاف باشند چهارم این که مضاف بیای متکلم نباشند جا اعبی جا اعبی این جا اعرابش چه هست؟ تقدیریه است قبلا خوندیم اگر مضاف بیا باشن ای چی میشه پس این چار شرط رو داشته باشن اینا هم هرگاه مرکوشی زن واغ میگیرن پس زنبه رو توضیح دادیم واب رو توضیح دادیم دیگه مونده چی؟ الیف و اما الالف فتکونو علامت لرف فی تسمیه تل میگه الیف علامت رفت هست در اسمهای مسننه فقط مخصوص یعنی علیف زمانی که علامت رفت بود فقط در چیا؟ در مسننه ها چون علیف و علامت نصف هم هست ولی در اسمهای خمسه اسم خمسه هرگاه منصول بشن علیف میگن پس میگه علیف علامت رفع هست در تصمیه اسمها مخصوص مانند جا زیدانی جا الرجولانی الرجلانی قائمانی زیدانی طبیبانی میبینیم که مسنلا اینجا مبتدای مرگوه چی گرفته؟ علیف گرفته پس علیف چه جایی علامت رفت رف رف در چه کلاناتی؟ فقط و فقط در مصنده پس علیف جانشین زنبه میشه در چه در مصنده اسمهای مصنده و اما نون اما نون جانشین زنبه میشه چه جایی؟ در فعل مزارهی که به آخرش چیزی چسبیده باشد زمیر تصنیه چسبیده باشد زمیر جم چسبیده باشد زمیر مؤنث مخاطب چسبیده باشد اینجا فعل مزاره مرفو باشه رفش با ثبوت نونه رفش با و اما نون فتکون و علامت لرف فعل مزاره اما نون علامت رف هست در فعل مزاره چه زمان؟ یهزربو که بازن مرکوم میشه اینو قبلا خوندیم ولی گفته بود زمانی که به فیل مزاره چیزی نچسبد زمه علامت رفعشه حالا میخونیم که اگر به چسبد نون علامت رفعشه اغطا صلبیه زمیر و تصمیر زمانی که به فیل مزارد زمیر تصمیر و مانند یهزربانی تزربانی علی جن و عمرو یعنصرانی یعنصرانی فعل مزاره مرفو علامه تره نون او زمیر جمع یعنصر جمع بچست و باز هم علامه تره نونه المسلمون یعنصرون او زمیر المعنسه تی المخاطب یعنصر مخاطب مالند تنسورینه این یعنصر مخاطبه فس تنسورینه مرفو هست انتی تنسورینه تنسورینه مرفوع علامت رفت نون فا اینجای کار اگر دقت کردید خلاصه ای بکنم گفته بود علامت های اعراب چارت هستن رف نصب جر جز بعدش گفته بود رفت چار علامت داره زمه واب علیخ نون بعدش گفته بود زمه علامت رفع هست در مفرد در جمع مقصر در جمع موننس سالم و در فعل مزاریک که به آخر چیزی نشستود بعدا آورده بود گفته بود که واب در دو جا علامت رخ است. در جمع مذکر و در اسمهای خمسه با چهار شرط که خوندیم یا اسمهای سته است بگوییم بعدش خوندیم که علف در یک جا علامت رخ هست فقط در مصنه در اسمهای مصنه و گفته بود که نون فقط در یک جا علامه است در فعل مزارعی که به آخرش زمیر بچسبد. دو جمع معنیست یعظرب نه و تضرب نه این نون علامت طرف نیست این نون خودش زمیره این نون خودش چیه؟ این نقطه رو عرض کنم لذا الله جلسه بعدی متن قطرون ندارو حفظ کرده او حضور به هم رسانید